صبح روز بعد رأس ساعت هشت و نیم زنگ در خانه والدینم به صدا درآمد باید سر کار میرفتم قرار بود عضو سپاهیان انقلابی بشوم. اصلا نمیدانستم سپاهیان انقلابی چه نهادی است و چه کار کردی دارد. فقط امیدوار بودم دیگر هیچ تماسی با قاعد ازم نداشته باشم. به خودم می گفتم من چجوری می توانم از انقلاب دفاع کنم؟ اصلا مگر من چه مهارتی داشتم که به درد سپاهیان انقلابی بخورد؟ خیلی سریع جواب را پیدا کردم. لابد با پذیرایی کردن از مهمانان آفریقایی قاعد اعظم در طول روز و آوردن نوشیدنی و خوردنی برای آنها می توانم به انقلاب قذافی کمک کنم. ولی خیلی زود فهمیدم که من در همان زیرزمین همیشگی با همان آدم های همیشگی و تحت فرمان همان کدبانوی همیشگی هستم. درست مثل سابق. نزد مبروک گلایه کردم. اما این آن چیزی نیست که قاعده ازم به من گفته بود باید انجام دهم. مبروک گفت شاید نباشد. اما یادت باشد تو از حالا به بعد قرار نیست چپها اینجا بمانی. من دیگر هیچ اتاقی نداشتم. دختر تازه‌ای در اتاق سابقم ساکن شده بود. بنابراین این در اتاق نشیمن را نشانم دادند و گفتند این جای خواب توست. انگار یک مراجعه کننده موقت بودم. به محض اینکه آخرین آفریقایی ها رفتند، به اتفاق دختری که تازه از راه رسیده بود، به خدمت قائد ازم فراخوانده شدیم. هیچ نشانه‌ای از هیچ عمل انقلابی به چشم نمی‌خورد. آش همان آش بود و کاسه همان روز بعد یواشکی به پدرم زنگ زدم مکالمه کوتاهی بود قبلا وضعیت غیرقابل تحملم را به پدرم گفته بودم او حالا عصبی و مسترب بود به من گفت سریا خوب گوش کن چه میگویم؟ این مهم است در اولین فرصت پیش من بیا و حتما پاسپورتت را هم همراه خودت بیاور. بله، من هنوز پاسپورتم را داشتم. بله، جالب و عجیب است، اما هنوز آن را داشتم. موقعی که از سفر آفریقا برگشتم، مبروک یادش رفته بود پاسپورتم را از من بگیرد. به یکی از راننده ها گفتم که یک معمولیت کاری خیلی فوری در داخل شهر دارم. به محض خروج از بابالعزیزیه از راننده خواستم در یکی از خیابانها توقف کند تا من کاری را زود انجام دهم و برگردم. به سرعت سوار تاکسی دیگری شدم و خودم را به پدرم که در ماشینش منتظرم بود رساندم. او به سرعت برق و باد مرا به سفارت فرانسه برد و سپس در آنجا فرم‌های مخصوص ویزای اضطراری را پر کردم. فردی که مسئول صدور ویزا بود با توجه به آشنایی‌های قبلی که با پدرم داشت، قول داد ویزای من به جای یک ماه ظرف هفته آینده صادر خواهد شد. پدرم سپس مرا سوار ماشینش کرد و به سرعت کوچه ها و خیابان های فرعی را پشت سر گذاشت تا به ترافیک خیابان های اصلی بر نخوریم. او به قدری مسترب و نگران بود که قلوب نیست اگر بگویم بیش از هزار بار به آینه عقب ماشینش نگاه کرد تا مطمئن شود کسی در تعقیب ما نیست. نهایتا مرا سوار یک تاکسی کرد تا خودم را به رانندهای برسانم که در ماشینش منتظر بود مرا من به بابل عزیزیه ببرد. روز بعد دوباره باید نقش خدمتکار را بازی می کردم. اقامتگاه ارباب پر از آدمهای معروف بود. این بار برخی از آنها را شناختم. یک کارگردان معروف مصری، آوازخوان سرشناسی از مصر، خواننده‌ای لبنانی، مجری برنامههای رقص و آواز از لبنان. قاعد ازم از دفتر کارش بیرون آمد تا در سالن بزرگ پذیرایی به آنها ملحق شود و در کنارشان بنشیند و حرف بزند. او بعداً به طبقه بالا به اتاق خوابش رفت و تعدادی از خانمهای مهمان نیز یکی پس از دیگری به او ملحق شدند. مبروکه برای هر کدام از آنها کیف سامسونتی پر از پول و طلا و جواهرات آماده کرده بود تا موقع عظیمتشان از لیبی تقدیمشان کند. می توانستم شبها برای خوابیدن به خانه والدینم بروم. اما خیلی زود متوجه شدم که دیگر به آنجا تعلق ندارم. حالا یک غریبه بودم. من برای خواهر و برادرانم الگوی بدی تلقی می شدم. مادرم حالا کاملا از من فاصله گرفته بود و بیشتر اوقاتش را در شهر سرت همراه خواهرم و کوچکترین برادرم سپری می کرد. دو برادر دیگرم برای ادامه تحصیل به خارج رفته بودند. به این ترتیب من به همراه پدرم و دو برادر دیگرم حالا در ترابلس زندگی می کردیم. اما ادامه زندگی با آنها ناممکن از کار درآمد در واقع این یک مصیبت واقعی بود پدرم می پرسید آخر این چه نوع زندگی است که تو داری تو هیچ الگوی خوبی برای برادرانت و دیگر اعضای خانواده نیستی راحتتر این بود که آنها اصلا مرا نبینند حاضر بودم بمیرم اما اینطوری هر روز در برابر چشمان پدرم و برادرانم خجالت و عذاب نکشم. و بعد اتفاقی رخ داد که تا قبل از آن اصلا تصورش را هم نمیتوانستم بکنم. یواش یواش ترجیح دادم که به جای ماندن در خانه در بابل العزیزیه بمانم. به آزمایشگاه برگشتم، دوباره آزمایش خون دادم و دوباره خوابیدن روی کاناپه به حالت آماده باش طی شب چون امکان داشت هر لحظه احزار شوم بعد پدرم زنگ زد، آماده باش، چهار روز دیگر ویزای فرانست آماده است. پس دل به دریا زدم و پیش قضافی رفتم و به او گفتم مادرم خیلی مریض است، سه هفته مرخصی لازم دارم. او با دو هفته موافقت کرد دوباره به خانه برگشتم اما چه فضای وحشتناکی مجبور بودم مخفیانه سیگار بکشم و به هشام تلفن بکنم و اعصاب همه را خرد کنم دروغ میگفتم و وانمود میکردم از بابل عزیزی زنگ زده و احضارم کردند و یواشکی جیم می میشدم تا هشام را ببینم می دانستم که این کار خیلی خطرناک است. میدانستم دارم دیوان بازی در میآورم اما کم و بیش کل زندگیم از مدت ها پیش از مسیر عادی خودش خارج شده بود. دروغ گفتن تبدیل به شیوهی برای بقایم شده بود. هشام به من گفت دوستت دارم. تو نمی توانی اینجوری ترکم کنی و مرا اینجا تنها بگذاری؟ هشام hey, این تنها راه حل است. دیگر نمی توانم در لیبی زندگی کنم. بابل عزیزیه هرگز مرا به حال خود نخواهد گذاشت و خانوادم به چشم یک حیولا به من نگاه می کنند و برای تو هم جز زحمت و دردسر هیچ هیچ ای نخواهم داشت. سورایا تو نمی توانی کمی منتظر بمانی تا ما بتوانیم توانیم دوتایی با هم به خارج برویم؟ نه هشم اینجا من همیشه تحت تعقیبم و باعث خواهم شد زندگیت در معرض خطر قرار بگیرد تنها امیدم این است که قذافی مرا فراموش کند و فرارم را نادیده بگیرد به خانه برگشتم تا چمدانم را ببندم مثل خوابگرد ها بودم به هر چیزی که در اطرافم اتفاق میافتاد بی تفاوت بودم به من گفته شده بود که ماه فوریه در فرانسه خیلی سرد است و باید کفش زمستانی و پالتو بپوشم. داخل کمد چند دست لباس پیدا کردم که مادرم از سفر چند سال قبلش به تونس برایم سوغاتی آورده بود. او به پدرم گفته بود اینها برای سریاست من مطمئنم که او امسال به خانه برخواهد گشت. مادرم پنج سال منتظر بازگشتم به خانه بود، مادرم روزها با پرسش های مردم درباره من روبرو می و سعی می کرد آبروداری کند. او شبها هق هق میگریست و دعا می کرد خداوند حافظ دختر کوچولویش باشد و او را سالم و سلامت به خانه بازگرداند. اما من حالا دیگر دختر کوچولویش نبودم و او را پاک نومید کرده بودم. پدرم صبح خی زود بیدارم کرد رنگ چهرش سفید شده بود نه در واقع سبز شده بود اما لبهایش سفید بود قبلا هرگز اینطوری ندیده بودمش از فرت ترس مثل یک تکه چوب خشک شده بود پدرم با استفاده از ژل موهایش را به عقب شانه کرده بود میخواست مثلا تغییر قیافه بدهد کت و شلوار مشکی تن کرده بود با یک ژاکت چرم اینه که دودیش را هم به چشم زد تا قیافش کاملا شبیه گانگسترها یا جاسوسها شود. به سرعت یک شلوار و پیرهن جین پوشیدم. روسری مشکیم را به سر کردم و عینک آفتابی زدم تا چهرم را پشت آن پنهان کنم. بعد به مادرم زنگ زدم تا با او خداحافظی کنم. به موبایلش زنگ زدم چون میترسیدم تلفن خانه شنود شود. تماس تلفنی ما کوتاه و مختصر و سرد بود. بعد یک تاکسی گرفتیم و عازم فرودگاه شدیم. پدرم مدام نگاه های عصبی به من میکرد. سریا چه مرگته؟ قیافت توریست که انگار هیچی برایت مهم نیست خب راستش را بخواهید خیلی برایم مهم نبود فکر می کردم حالا قرار است مثلا چه اتفاقی برایم بیفتد که خطرناکتر از آن بلاهایی باشد که تا آن زمان بر سرم نازل شده بود مثلا کشته می شدم؟ چه بهتر که کشته می شدم و از شر این زندگی کوفتی راحت می شدم پدرم در فرودگاه خیلی مراقب و بیمناک بود مدام به ساعتش نگاه میکرد و به محض اینکه کسی از کنارش می میگذشت مثل فنر از جایش می پرید. نگران بودم مبادا سکته کند از یکی از دوستانش در فرودگاه خواسته بود کاری کند که اسم من در فهرست مسافران درج نشود. او دوباره چک کرد تا مطمئن شود از دروازه امنیتی عبور کردیم و وارد سالن خارجی شدیم پدرم تمام مدت دورو را می پایید. همش از این میترسید ترسید که نکند سر و کله مزدوران و جاسوسان قذافی پیدا شود. پدرم به هر کسی که در برابرش پدیدار میشد مشکوک بود. طوری رفتار میکرد انگار در فیلمی جاسوسی است. عاقبت لحظه کندن هواپیما از باند فرودگاه فرا رسید. پدرم تا آخرین لحظه به در جلوی هواپیما خیره شده بود طوری که نمی توانست یک کلمه حرف بزند دهانش خشک شده بود و تا زمانی که به فرودگاه روم رسیدیم دو دستی محکم دستگیری سندلیش را گرفته بود احتمالا خیال می کرد قاعد ازم انقدر قدرت دارد که می هواپیما را در وسط آسمان و زمین به لیبی برگرداند اما موقعی که ما در فرودگاه روم پیاده شدیم او خندید او ازان کرد طی این چند سال گذشته برای اولین بار بوده که خندید است پدرم برنامه سفر را طوری ترتیب داده بود که ما از طریق روم به پاریس برویم پیش خودش حساب کرده بود که اینطوری عوامل اوامل قذافی نمی توانند رد ما را بگیرند در فرودگاه روم به دستشویی رفتم و رو را برداشتم. یک کمی خط چشم کشیدم. لبهایم را ماتیکی کردم و کمی عطر به خودم زدم. ما داشتیم به پاریس می رفتیم. شهر زیبایی و مد. فلاکت ها و بدبختی هایم به پایان رسیده بود. یا حداقل اینطور فکر می کردم.